حکایت دزدی به خانه پارسایی درآمد. آمد، چندان که جوز چیزی نیافت، دل تنگ شد، پارسا خبر شد، گریمی که بران خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود، شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ، تراکهی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا نچنان که از پست عیب گیرند و پیشت بیش میرند. در برابر چو گوسپند سریم در قفا همچه گرگ مردم خوا. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دگران خواهد برد.